بسم الله الرحمن الرحیم الافلام را تلک آیات الكتاب الحکی بنام خداوند بخشنده یه محبان الف لام را این اوجالت کتاب با هکمت است أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدث عند ربهم قال الكافرون هذا لساحر مبين مردم اعجاب انگیز است که به مردی از ایشان وحی بسر که مردم را از عاقبت اعمال ناشایست ایشان بیم بده و به مسلمانان مجده بده که ایشان در حضور پروردگار خیش مقام ارجمندی دارند کافران گوگند إن واقعا جادوگر آشکار است إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سته أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفعا إلا من بعد إذنه بیگمان پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و آنگاه بر عرش مستولی شد تدبیر کار جهان را می میکند هیچ شفاعتگری نیست مگر بعد از اجازه او این است خداوند پر برگار شما پس او را پرستش کنید آجا پند نمی گیرید ایلیه موجركم جمیعا وعد الله حقا اینهو یبدعو الخلق سم میعیدهو لیجزی الذین آمنوا و وَالَّذِينَ كَفَعُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعْذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا بازگشت همه شما بسوی اوست بعدی خداوند حق است گمان اوست که آفرینش را آغاز می و سپس آن را تکرار می کند تا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به انصاف پاداش دهد و کسانی که کافر شدند برایشان آشامیدنی است از آب سوزان و عذاب دردناک به سبب این که کافر گردیدند هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منادل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون او کسی است که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد و برای آن های مقدر کرد تا عدد سالها و حساب کارها را بدانید خداوند این را جز به حق نیافریده او آگیات خود را برای گروهی که اهل دانشند شرح می دهد مسلما در آمده شده شب و روز و آن خداوند در آسمان ها و زمین آفریده اوکیال و نشانه های بر آنها که پرهیزگارند و گناه چشم دلشان را نابینا نکرده ان الذين لاون لگو ولاظحيات دنیا وابوم بهول الذيمن آيات وافونون آنها که امید لقاگ ما بر ساخیز را ندارند و به زندگی دنیا خوشنود شدند. و بر آن تکیه کردند و آنها که از آیات ما غافلند اولائک مقواهم آنها جایگاهشان آتش است به خاطر کارهاگی که انجام میدادند ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم بل که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند آنها را در پرتو ایمانشان هداویت می کند از زیر قصرهای آنها نارها در باقهای بهشت جریان دارد دعوه فيها فیها اللهم و فيها سلام تلا و آفر دعوه هم ان الحمد لله و رضی گفتار و دعای آنها در بهشت این است که خداوندا منظهی تو و تحییت آنها سلام و آخرین سخنانشان حمد مخصوص پروردگار عالمیان است ولو لا اگر همان گونه که مردم در بدست آوردن خوبی ها عجله دارند خداوند به کیفر اعمالشان مجازاتشان کند عمرشان به پاگان میرسد و سمگی نابود خواهند شد برای آنها که امید لقای ما را ندارند به حال خودشان رها می کنیم تا در طغیانشان سرگردان شوند. و اذا مفضل انسان نبود عالی لاهم سلم ما كشفنا عنه ذره وما كان لم يدعنا الى عدل مماس كذلك الذين للبستر فيما كانوا يعملون بهن قامك زيان و نار حتي در در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده است میخواند اما هنگامی که ناراحتی او را برطرف ساختیم چنان میرود که گویی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده نخوانده این گونه برای کاران اعمالشان زینت داده شده است و قال ما, ما امت وجاءهم پیش از شمارا را بهنگامی که ظلم کردند هلاك کردیم در حالی که پیامبرانشان با دل روشن سراغ آنها آمدند ولی آنها ایمان نیاوردند این گناه، گروه مجرمان را جزا می دهیم الارض من بعدهم سپس شما را در روی زمین بعد از ایشان جانشین گردانیدیم تا ببینیم كيف ان عمل مكنيد واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يظنون لكم ان اسب قرانا غير هذا او بدل قل ما يكون لي أن أبدله من ما ایلی ایلی و چون آجات روشن ما به ایشان خوانده می شود آنهایی که با ملاقات ما امید ندارند گویند برای ما قرآنی غیر از این بیاور یا این را تغییر بده، بگو من این صلاحیت را ندارم که آن را از پیش خود تغییر بدهم، من همان چیزی را پیروی می کنم که برایم وحج شده است، بیگمان من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از عذاب روز بزرگ می ترسم، قل لو شاء الله ما تعلمت وعليكم ولا ادراك به فقدر لبست فيكم امرا من قبل افلا تعقلون خداوند خردوند اراده میکرد آن را برای شما نمیخواندم و نه هم خداوند شما را به آن آگاه میگردانید من در میان شما پیش از این نیز عمره را سفری کردم پس آگاه شما در نمییابید فمن اظلم ممن استرى الله كذبا او كذب باياته انهم لا يفلح المجرم پس کیستمگار تر از کسی که بر خدا دروغ بربندد یا آگیات او را تکذیب کند بیگمان مجرمان هرگز رستگار نمی شبند و یعبدون من دون الله ما لا یضروهم ولا و ایشان اون ماملل به جز خداوند چیزهایی را پرستش میکنند که به ایشان نظرری میرساند و نه و میگویند اینها نزد خداوند شفاعتگران موکند بگو: آیا شما خداوند را از چیزی که در آسمان ها و زمین است و او آن را نمیداند آگاه میسازید؟ است ذات او و برتر است از چیزهایی که شریک او میتنداراند و ما الا امتا ولولا كَلِمَةٌ سبقت من ربك لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَفْتَلِفُونَ مردم نبودند مگر ملت واحد پس اختلاف ورزیدند و اگر کلیمه قبلا از جانب پروردگار و صادر نمی شد حتما در مسائلی که در آن اختلاف می فیصله شد وَيَطْمُؤُنُونَ لولا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فقل إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ میگویند چرا از پروردگارش به سوی او آجهی نافذ نشد پس بگو واقعا علم غیب نست خداست پس انتظار بکشید من نيز با شما از منتظرانم و اذا ادقننات رحمتا من بعد ضرر امستتهم اذا لهم مكر في آیاتنا قُلِ الله أَتْرَعُ مَتْرَا اِنَّ رُزُلَنَا يَفْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ با چون مردم را بعد از سختی که با ها رسیده رحمتی بچشانیم ناگاه در برابر آجات ما دسیسه میچینند بگو خداوند در بی اثر ساختن دسیسه سا سرعی تر است بگو انشرا شماو دَسِيسَ سميكي نيد ما مين بيساند هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرغن بهن بريح طيبة وفرحوا بها وَفارِقُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ عاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دَاعُ اللهِ دعا اللهم اخلصین له الدین لئین انجیتنا من هذه لنکونن منش شاکرین او کسی که شما را در خشکه و دریا تبان راه فیماگی می دهد. تا این که در کشتی قرار میگیرید و بادهای مافق آنها را به سوی مقصد حرکت می دهند و خوشحال می شوند ناگهان توفان شدیدی میوزد و امواج از هر سو و سراغ آنها می‌آید و گمان میبرند حلاق خواهند شد در این موقع خدا را از روی اخلاص عقیده می‌خوانند که اگر ما را نجاد دهی حتماً از سپاس گذاران خواهیم بود هم يبرون بالأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بويكم على أنفسكم مدى الحياة في الدنيا مدى الحياة في ثم إلىنا اما هنگامی که آنها را رهایی بخشید دوباره در زمین بدون حق ستم می کنند. ای مردم، ستمهای شما به زیان خود شماست، بهره از زندگی دنیا می برید، سپس بازگشت شما به سوی ماست، و خدا شما را به آنچه عمل می کردید، خبر می دهد. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فقتل فيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأعوام. فَأَخْتَلَقْنِيهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُوْرُ فَهَا وَالزَّيَّنَتْ وَالزَّيَّنَتْ وَظَنَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتاها أمونا أتاها أمونا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. زندقي دنياهم وأن دعاء بيض. از آسمان نازل کرده ایم که بر اثر آن گیاهان گناگون که مردم و چهار پایان از آن می خورند می روید که روی زمین زیباوی خود را از آن گرفته و از این می گردد و اهل آن مطمئن می شوند که می توانند از آن بهرمن گردند ناگهان فرمان ما شبهنگام یا در روز برای نابودی آن فرام می رسد و آنچنان آن را درو می کنیم که گویی هرگز نبوده است اینچنین آجات خود را برای گروهی که تفکر میکنند تفصیل می دهیم والله يدعو الى دار السلام و يهدي من خداوند دعوت به سراوی صلح و سلامت میکند به هر کس را بخواهد برای راست هدایت مینماوکد للذین احسنوا العمل و زیاد و لا ینهک ودواهم قتر و ذله اولائک اصحاب جنتی هم فيها خالدون کسانی که نیکی کردند پاداش نیک جیاده بران و زیاده بر آن دارند و تاریکی و ذلت چهرهایشان را نمیپوشاند آنها یاران بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند والذين كسبوا سيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئی که هم فيها اما کسانی که مرتکب گناهان شدند جزای بده به مقدار اندارند و سلط و خاری چهره آنها را میپوشاند و هیچ چیز نمی آنها را از مجازات خدا نگه دارد چهره هایشان آنچنان تاریک است که گوی 파ره هاگ از شب تاریک صورت آنها را پوشانده آنها یاران آتشند و و جاودانه در آن خواهند ماند وایوم اناحصرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم وزیلنا بینهم و قالت ما کنتم ایاما تعبدون بخاطر بیاورید آن روز را که همه آنها را جمع می کنیم سپس به مشرکان می گوییم شما و معبودهایتان در جای خودتان باشید تا به حسابتان رسیدگی شود سپس آنها را از هم جدا می کنیم و از هر یک جداگانه سوال می نماغیم و معبودهایشان به آنها می شما هرگز ما را عبادت نمی کردید فکفاد الله بیننا و بینكم این کننا عن عبادتكم لظافرین پس خدا خود در میان ما و شما بهحیث گواه کافی است یقینا از این فرستش شما بیخبر بودی هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم هم الحق وضل عنهم ما كانوا یفتعون در هر هرکس عملی را که قبلا انجام داده است آف می آفنوید و همگی دید بسوی الله مولا و سرپرست حقیقی خود باز می کردد و آنها را که به دروغ شریک خدا قرار داده بودند گم و نابود می شباند. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ومن یکرد الحین یا المیت و المیت من الحی و من یدبر الامر فتا یقولون الله فقل افلا تتقون بگو که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد که مالک شنباگی و بیناگی شماست کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میارد و کیس که کارها را تدبیر میکند پس ایشان به خواهند گفت خداوند بگو پس چرا نمیتسید فذالکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا ضلال فانا تفرخون است خداوند پروردگار بر حق شما پس آجا بعد از حق جز گمراهی وجود دارد پس چطور از حق برگردانده می شدید این شنین حکم پروردگارت بر کسانی که فسق کردند متحقق گردید به این ایشان هرگز ایمان نمی آورند. قل امی من یبدعو من یعیده قل اللہ یبدعو خلقتم من بگو آیا از شریکان شما کسی هست که آفرینش را آغاز نماگید و سپس آن را اعاده کند بگو این تنها خداوند است که آفرینش را آغاز و سپس اعاده می کند پس چگونه از راستی برگردانیده می شوید قل می فرایکم من یهدی ال قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى تَمَعَّلُوا كَيْفَ تَحْكُمُونَ بگو آیا از شریکان شما کسی هست که بسوی حق هدایت کند؟ بگو این خداوند است که بسوی حق هدایت می کند. پس آیا کسی که بسوی حق هدایت می کند تر است که فایده شود یا کسی که خودش راه نمی یابد مگر اینکه که هدایت شود. پس شما را چی شده؟ است؟ چه چگونه؟ قضاوت می کنید؟ وما یتبیع اکثرهم الا ظنن این الظن لا یهنی من الحق شیئه این الله علیمون بما یفعنون اکثرشان جز گمان چیز دیگری را پیروی نمی کنند باقیان گمان انسان را از حق هرگز به نیا ساخته نمی تواند. بیگمان خداوند و آنچی ایشان می خوب آگاه و ما کان آبا القوآن ان مفتران من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدنه و تفصیل الكتاب ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل الكتاب لا ریب فه من رب جای ندارد كه این به غیر خدا نسبت داده دا شود ولی تصدیقی است برای آنچه پیش از آن نازل شده است و تفصیل کتاب است کتابی که در آن شبههای نیست کتابی از جانب پرباردگار جهانیان ام یکولون افترا قل بقتو بزورتی مثله و من افتقعتم من دون الله این کنتم خادفین آیا می گویند آن را محمد افترا کرده است بگو سوره همانند آن بیاورید و جز خدا هر کرámیت آبامید و کمک فرق خانید اگر صادق خستید بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يكتن أويلوا كذلك كذب الذين انقضواه فؤوا كيف كان عاقبت الظالمين بلکه چیزی را تکذیب کردند که به آن از نظر دانش احاطه ندارند و هنوز معنای واقعی آن برایشان متحقق نشده است این چنین کسانی که پیش از آنها بودند نیز دروغ بربستند پس ببین که آخر کار ستمکاران چگونه بود و میوری و می وقع مبیلیدیدیم از آنهاارها کسانی اند که به این کتاب ایمان می و کسانی اند که به آن ایمان ننی و پروردگار تو به حال آگاه است. و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم انتون بریعون مما اعمل و انا مما تعملون اگر تو را تغذیب کردند به ایشان بگو عمل من برای من است و عمل شما برای شما از آن من میکنم شما بیزارید و از آن شما میکنید من بیزارم و من هم من یستمیعون ایلیک افا انت فکم ولو کانو لا يعقلون و من از ایشان کسانی اند که با نمود می سازند به تو گوش فرام می دهند آیا تو مردم کر را شروانده می توانی اگر چی ندانند؟ و از ایشان کسانی اند که با نمود می سازند به سوی تو می نگرند؟ آیا تو مردم کور را راه راست نشان داده توانی اگرچه نبینند این الله لا یظلمن خداوند بر مردم هیچ ستمی نمی ولی این مردم هستند که بر خود ستم می کنند. وَيَوْمَ يَحْفُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَتُونَ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَهْنَهُمْ قَدِضَفِرَ الَّذِينَ وَمَا كَانُوا بر که ایشان را حشر کند چون این فکر که گویا جز ساعتی از یک روز در دنیا درنگ نکردند یک دیگر را می شنافتند. واقعا کسانی که دیدار خدا را تکسیب کردند زیانکار شدند و ایشان رهیاب نبودند و اما نري منك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا ثم على ما خو از چیزهایی را که بهشان وعده کرده در دا این دنیا به تو نشان بدهیم یا اینکه تو پیش از آن بمیرانیم در هر صورت بازگشتشان به با سپس خداوند بر آنچ می‌کنند، گفاف. وَالْقُلْمِ الْمَتِّرُ رسول برای هر کلمی پیامبری چون پیامبرشان آمد میارشان به انصاف فیصله می شود و ایشان ستم نمی شود و یقولون متى الوعد ان كنتم این كنتم خابقی می این بعدت چه وقت به سر می رسد اگر شما راست گوگی قل لا أملك لنا في ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة من أجل إذا جاء أجلهم فلا يتأثرون ساعة ولا يتقدون بگو من به خیشتن زیان و ساجدهی رساندن نمی مگر آنچه خدا بخواهد برای هر امتی می چون می به بسر رسید نه آن را ساعتی تأخیر کرده می و نه هم تقدیم. قل ان او من بي بي اگر عذاب او در شب روز به شما بیاجد گنهکاران با چه چیز آن شتاب می ورسند اثم اذا ما وقع آیا باز هنگامی که عذاب آمد به آن ایمان میآورید اکنون دیر شده است در حالی که پیشتر به آمدن آن شتاب داشتید ثم مثيل للذين ظلموا الغلب هل تجزون إلا بس عذاب الا گفته می شود عذاب همیشگی را بچشید آجا جز به آنچه کسب کرده اید جزا داده می شوید و قل ای و ربی انهو لحق و ما انتون بمعجدی از تو می پرسند آیا این روز جزا حق است؟ بگو آری با سوگند با پروردگارم که واقعا آن آم حق است و شما از آن جلوگیری کردن نمی تبانید ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأتورننا مثلا ما وأول العذاب، وقضي دينهم بالقشت وهم لا يظلمون اجر هر ستمقار داراجي روح زمين را در اختيار خداشت باشد بیگمان آن را فدیه می دهد وقتی که عذاب را ببیند فشای مونی خود را می پوشند بعد در میانشان به انصاف حاف می شود بعد ایشان ستم نمی شود علا این من اللہ ما في السماوات والأرض علا این وعد الله آگاه باشید بیگمان آنچه در آسمان ها بسنین است از آن خداست آگاه باشید بیگمان و عدی خدا حق است مگر اکثرشان نمی‌دانند. دانند گرداند و او که زنده میگرداند و میمیراند و به سوی او بازگردانده میشبید یا ایوها الناس قد جاکم موعظتم من ربکم و شفاء لما في الصدور و هده و للمؤمنین ای مردم بیگمان برای شما از جانب پربرکار شما پندی آمده است و شفاقی برای آنچه در سینه خواست و هدایت بر برحمتی برای مؤمنان قل بفضل الله و برحمتی فبذالک فلیفرخو و مما معون بگو بفضل خدا با فضل خداوند و برحمت او و این چیزها بالجد شادمان شبند این نظران چه میاندوزند بهتر است قل ارائیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام و وحلال تَجَنَّبْتُمْ مِن حَرَامٍ وَحَلَالَهُمْ كُلٌّ ٱللَّهُ لكم أَم عَلَى الله تَفْتَرُونَ بگو آگاه دیدید ام چرا که خداوند برای شما از روزی פרו فرستاده است شما بعد از آنها را حرام و بعضی را حلال گردانیدید بگو آگاه خداوند به شما اجازه داده دا است یا بر خدا افترا بی کنید. و ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه. إن الله ذو فضل على الناس ولكن أسرهم لا يسكنون. کسانی <تصفيق> که بر خدا دروغ می آیا به مجازات روز قیامت چه فکر می کنند؟ بیگمان خداوند، بند مردم صاحب فضل است ولی اکثرشان ناسپاسند. وما تكون في شأنه وما تطلب منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ فيضون فيه وما يعزو ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر و به هیچ کار یا فکر مشغول نمی باشی و هیچ آجه از قرآن را تلاوت نمی کنی و شما هیچ کاری را نمی کنید مگر آنکه چون به آن داخل می شوید بر شما گواه هستیم و از پروردگار تو به اندازه ذره نه از آن کوچکتر و نه هم از آن بزرگتر نه در زمین و نه هم در آسمان پوشیده است مگر اینکه همه اینها در کتاب روشن سبت است ادنا ان الله لا خوف آگاه باشید بیگمان بر دوستان خدا ترسی نیست و نه هم ایشان می میشوند الذين آمنوا وكانوا كانوا يتقون آنالك ايمان آبردند و اعتقبا داشتند لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم برای ایشان هم در دنیا و هم در آخرت مشته در سخنان خدا تغییری نیست این است همانا رستگاری بزرگ ولا لا قولهم این العزت لله جمیعا هو سمیع العیم سخنشان تو را اندوگی حقا که عزت کاملا از آن خداست اوست شنبا بهدانا علا این لله من فی السماوات ومن في فی الارض وما یتبعو الذين یدعون من دون الله آگاه باشید بیگمان هران چه در آسمان ها و هران چه در زمین است از آن خداست و کسانی که جز خدا چیزهای دیگر را به شریک نیاگش می نماکند جز گمان چیزی را پیروی نمی کنند و نیستند ایشان مگر اینکه. دروغ میگویند هو الذ جعل لكم الیل لتسنوا فه وانها واصران فی ذللآیات لقوم سمعون اوست <تصفيق> كه برای شما شب را آفرید تا در آن آرام گیرید و روز را روشنی بخش کرد حقا که در این پدیدها نشانه‌های جیس برای مردمی که میشناواند. قانوت اتخذ الله و سبحانه هو الو له ما فی السماوات و ما فی الأرض إن گفتند خداوند فرزندی گرفته است پاک است او هم اوست بینیاز آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست شما بر این ادعای خود حجتی ندارید او یاد دربار خدا چیزی میگویید که نمیدانید قول بگو بدون شک آنانی که دروغی را بر خدا میبندند هرگز دستگار نمی شبند. ازاع فی الدنیا ثم الینا موجههم فنمذيقهم العذاب بما ارها از دنیوی استفاده محدودی میکنند سپس بازگشتشان به سوی ماف در آن فرصت و ایشان عذاب شدید را میچشانیم و سبب آنکه كافر بودان وقالوا عليهم نبأ دوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبو عليكم مقاري وتذكيري إن كان كبو عليكم نَقَانِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَإِنَّ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ مَتَى كُنْتُمْ نَقْدُوا برشن داستان نوح را بخوان چون به قوم خود گفت ای قوم من اگر بر شما موقع من و این که من به شما آجات خدا را یاد آوری می کنم گران تمام می شود پس من به خدا توکل کردم شما در زمینه موافقت خود و شریکان خود را فراهم آورید تا امر شما بر شما پوشیدن نماند ب پس حكم را درباره من صادر کنید یعنی به زندگی من خاتمه دهید و مرا هیچ مهلت ندهید فإن تولیتم فما سألتكم من أي لمن أريا إلا على الله وهمدت أن أكون من المسلمين اگر از دعوتم روی برگردانید من از شما مزد نخواستم نیست مزد مگر بر خدا و معمور شده ام که از مسلمانان باشم فکر کذبوه فنزجیناه و من معه فی الفلک و خلائف و مگر او را تکذیب کردند ولی ما او و کسانی را که با وی بودند در کشتی نجات دادیم ایشان را جانشینان روی زمین گردانیدیم و کسانی را که آجات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم پس بنگر که عاقبت کار بیم داده شدگان چگونه بوده است ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقبع على قلوب المعتدين پس بعد از وی بسا پیامبران را برای مردمشان شان فرستادیم ایشان به مردم خود نشانه های روشنی آوردند ولی ایشان به چیزی که آن را از پیش تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند بدین ترتیب بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم تسبب و جام قوما را بعد از ایشان به سوی فرعون و اطرافیانش با نشان های خیش پرستادی. ولی ایشان تکبر بردیدند و مردمی گنهکار بودند و من عندنا قالو اینها هذا سحر چون به ایشان از جانب ما معجزه برحق آمد گفتند این واقعا جادوی آشکار قال موسی اتقولون للحق لما جاء ازقرون مح در باره معجزه برحقی که به شما آمده است چنین می گفتید؟ یا این سحر است در حالی که جادوگران هرگز رستگار ننی قالوا أجتنا لتلفتنا عما وجبنا عليه آباءنا و تكون لكم الكبیرياء في الأرض وما نحن لكم ما قف گفتند آجات بروج آن بسوی ما آمدهی تا ما را از آن چی خود را بر آن یافته ایم بگردانی و تا بزرگی در روی زمین از آن شما گردد مگر ما به شما ایمان آرندن نیستی. نیستیم فرعون گفت هر جادوگر و ساهر آگاهی را نزد من آورید انثى حارث قال لهم موسى انكم ما انتم الملكون ان قام بك الساهرون موسى بانخا به پس چون صاهران و سایل سهر خیش را افگندند موسی گفت آنچه را شما آورده اید سهر است و بیگمان خداوند و زودی آن را باطل میگرداند حقا که خداوند کار مفسدان را به اصلاح ننی آورد. و یحیی کن الله الحق ولو خدا بند حق را با کلمات خیش به همان گونه ای که وعده کرده است تحقق می بخشد. هر برای مجرمان ناخوشایند باشد. فما آمن موسی إلا ذريت من قومه على قوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وله بموسى إيمان نعبارد مگر فرزندان از قوم آن هم با تر تر سرعون و اطرافیانش تا مبادعشان را تعذیب کنند بدون شک فرعون در زمین سرکش بود و با واقعا او از اصراف کارم بود وقال موسی یا قوم این کنتم آمنتم بالله فعليه توکلون تو گفت ای قوم من اگر شما واقعا به خدا ایمان دارید پس بر وی توکل با کنید اگر تسلیم فرمان او هستید تو قالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم در جواب گفتند به خدا توکل نمودیم پروردگار مارا بسیری آف مویش مردم ستمگار مگر دانم و نجینا برحمت که من القوم الكافين و را برحمت خود از گروه کافران نجات ده و اوحینا الى موسى و اقیه انتبو و آل قوم و اجعلون بیوتكم قبلتا و اقیم صلاح و و به موسا و برادر او وحج فرستادیم برای قوم خود در مثل خانه های تحیه کنید و خانه های خود را قبله بگردانید نماز را به تمام و کمال ادا کنید و مؤمنان را بشارة به. وقال موسى ربنا إنت آتيت فرعون العون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا. آتيت فرعون العون وملأه زينته وأموالا. الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا كمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم موسى قوف ترباركارا تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموال سرشار در زندگی دنیا داده ای و نتیجه این شده که بندگانت را از تو گمراه می ساتند بروازگارا اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت و سنگین ساز تا عذاب دردناک را نبینند ایمان نیاورند قال قد أجيب الدعاء وكم ما فستسما ولا تتبعوا إن سبيل الذين لا يعلمون فرمودای شما پذیرفته شد. استقامت به خرذ بهید و ازراف و رحم کسانی که نمی‌دانند پیروی نکنید وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودٌ بَغْيَاءُ وَارِيَةٌ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنَّا قَالَ آمَنْتَ أَنْتَ و من بنی اسرائیل را از دریا یعنی رود عظیم نیل عبور دادی و فرعون و لشکرش از سر و تجاوز به دنوال آن ها رفتند تا هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسرائیل با او ایمان آورده اند وجود ندارد و من از مسلمین هستم اما با او خطاب شد الان در حال که قبلا اوسیان کردی و از مفسدان بودی فَالْيَوْمَ مُنَجِّهِكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَهِ وَإِنَّ كَثِرًا من الناس عن آيَاتِنَا لَوَافِلُونَ ولی <تصفيق> امروز بدنت را از آب نجات میدهیم تا ابرتی بروجه آیندکان باشی و بسیاری از مردم از آجات ما قافلان ولقد بوأنا بني إسرائيل لمبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ما بني اسرائيل را در جایگاهت و راستی من تنتختی و اسروجی هاگه تاکیزه به ان خطا عطا کرده این اما آنها بنزا و اختلاف برخواستند و اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم و آگاکی پر پروردگار تو در روز قیامت میان آنها در آنچه چه اختلاف کردند داوری خواهد کرد فرین کن تفیشتی من بل الذين يقراون الكتاب من قره لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اگر در آنچه بر تناظر کرده این تردید داوی از آن ها که پیش از تو کتاب آسمانی را می خوانند سوال کن بدان به طور حق از طرف پربرگارت به تو رسیده این هرگز از تردید کنندگان ما باش تبصره. البته او در چیزی که با شهود دریافت بود هرگز تردید نداشت این درسی بود برای مردم ولا تَكُونَنَّ من الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ من الْخَاتِرِينَ و از آنها مباش که آجات خدا را تکذیب کردند که از کاران خاکی بود اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُؤْمِنُونَ و بدان آنها که فرمان خدا بر آنان تحقق یافته ایمان نمی آورند و لو جاءت هم كل حتی هرچند تمام آجات اراقی و نشان حوج او به آنان برسد تا زمانی که عصاب علیم را ببینند. لولا كانت قضيه امنت فنفعا ايمان إلا قوم يونس, إلا قوم يونس شفنا عنهم عذاب القذیف الحیات الدنیا الى چرا هیچ شکر شعرها و آبادیها ایمان نیاوردند که ایمانشان به با موقع باشد و مفید و خارشان افتد مگر قوم یونس به هنگامی که ایمان آوردند عذاب رستا کننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف ساختیم و تا مدت معینی یعنی تا زندگی و عجلشان آنها را به سمان ساختیم و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم انت حتى مؤمنين و اگر تذرهم ما اگر تو همه کسانی که در روی زمین اند ایمان نیاوردند آیا تو مردم را مجبور میسازی تا مسلمان شوند و ما كان نفس ان تؤمن الا باذن الله وَيَعِظُ جَس عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَيْش كَس نمیتواند جز به اراده خدا ایمان آرد و خداوند شک را بر کسانی مقرر میگرداند که نمیفهمد قل لهم ماذا في السماء والأرض وما تغنی الآیات قوم بگو بنگرید چه چیز است در آسمان ها و سمین اما این نشانه ها و این بین دهندگان هیچ کدام برای نامسلمانان سود بار نمی فهل با ینتظرون الا مثل پس آیا بچه چیزی غیر از مثال روزهای پیشین یا نخیش انتظار میکشند بگو انتظار بکشید من نیز از منتظرانم. ثم ننجی رسلنا و آمنوا كذلك حقاً علينا منج المؤمنين سپس ما پیانبران با مؤمنان را نجاس می‌دهیم، این چنین بر ماست که مؤمنان را نجاؤد دهیم. قل متكين من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من بگو ای مردم اگر شما در مورد دین من در شکستید من آنانی را که شما به جز خدا میپرستید نمیپرستم بلکه من خدای را میپرستم که شما را می, می و مأمور شده ام که از مؤمنان باشم وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَتَ لِلْدِينِ حَنِیفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَمَنْ گفتا شده که بسوگ دین خالص رو آبر با هرگز وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَظُرُكَ فَإِنْ ان انك اذا من الظالمين باباجوس خدا چیزی را که نبت سود میرساند رساند و نه همتیانی مخا پس اگر چنین کنی واقعا که از ستم کارانی و ان يمسك الله بغر فلا كاشف له الا هو وإن درک بخیر فرارادل و هو الغفور و اگر خدا زند برای امتحان یا کیفر گناه زیان بطور ساند هیچ کس جز او آن را برطرف نمی‌کند. و اگر اراده خیر برای تو کند هیچ کس مانی فضل او نخواهد شد، آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند و او غفور و رحیم است قل الحق من ربكم فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي بِنَفْتِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَانَ عَلَيْهُمْ بِوَكِيلِ بگو ای مردم بگو من با شما حق از جانب پروردگار شما آمد پس هر که رهیاب شد حقا که به سود خیشتن رهیات می شود و هرکی گمراه شد پس حقا به زیان خیشتن گمراه می شود و من که ساد شما نیستم و تدع ما يحكم الله و خير خیر و آنچه را به تو وخیه می شود پیروی کن و صبر کن تا خدا حکم خویش را صادر کند و او بهترین فیصله کنندگان است